آتشی آتشی که در همه چهان در همه چیزی زبانه میکشد نخست با این آتش است که همه جهان روشن میشود با آموزه زردوشت روشنی اولویت گفت روشنی بر آتش بلی در پرهنگ ایران اصل جهان آتش است و این آتش است که در همه جهان در هر چیزی زبانه میکشد و از آن آتش همه چیزها روشن می شود. این آتش براز سوانگه نامیده می شود که در همون گرودمان یا خانه یاغوت یا آبادیان هست که صحبتش را در گفتار پیشین کردیم و ادامه می دهیم تا این مسئله که بنیاد تفکر ایرانی روشن بشود ما پدیده و وقایه ای را از گیتی از جرف های میپسندیم ترجیح می دهیم و بر می و با گذاردن یا تعبیل آن خدایان و جهان و فلسفه زندگی و اخلاق و هنر را می و می گذاریم. خدایان و جهان و اخلاق و هنر و فلسفه زاده از این گذینش و پسندیدن و ترجیح دادن است ترجیح دادن از جرفای جان ترجیح دادن پدیدههای نزدیک به ما از جرفای جان این خدایان و جهان و پرسپه از این ترجیح دادن که ویچیدن ویچیدن میگویند پیدایش شدن و این درست باعث ناباوری ما میشود این ترجیح دادن و پسندیدن و برگزیدن نه یک یا چند پدیده نزدیک و عادی در گیتی که سر چشمه پیدایش و تصاویر و مفاهیم خدایان و اخلاق و فلسفه ما شده تجربه یا آزم... آزمون مایه جان ماست که اصل تفکر فلسفی انسان است در این ترجیح دهی و پسندیدن و برگزیدن با این پدیده های نزدیک آشنا انسان بومی برد که میان جهان و معنای کل را یافت است این نیروی بی بیرون آوردن جهان و خدایان و فلسفه زندگی از یک یا چند پدیده بسیار کوچیک همون نیروی است که سپس شکل فلسپی به خود می دیرد با این ترجیح و پسند و گزینش و سپس تعبیل یعنی گذاردن تعبیل این پدیده های کوچک به بزرگ کار دارد اینها تخم هستند که از آن خدایامون فلسفه اخلاق و اخلاق هنر می رویم. اینها تخمه هستند که از آن خدایان فلسفه و اخلاق و هنر می رویم. تفکر فلسفی با شناخت چگونه اندیشیدن انسانها کار دارد. انسان ها چگونه می‌اندیشند؟ نه با محتویاتش فقط با محتویاتش چگونه انسان ها از همان آغاز اندیشیدن تا چگونه انسان ها امروز می‌اندیشند، سرمایه تفکر پرزبیش از محتبیات آنچه پیشینیان اندیشیدند، ان، باید همیشه به سراغ آن رفت که آنها چگونه می مسئله دانستن تاریخ این محتویات نیست بلکه درک این محتویات بلکه درک این محتویات از این محتویات به چگونه اندیشیدن این محتویات است اندیشیدن انسان از همون آغاز اصطلاح از همون آغاز اندیشیدن انسان از همون آغاز به اصطلاح امروزه ما سکولار بوده است درست ما این را نمیدانیم اندیشیدن انسان از همون آغاز در پرهنگ ایران و در جاهای دیگر که ما متخصص آن نیستیم به اصطلاح امروزه ما سکولار بوده است چون بنیاد تفکر در ایران با این همانی دادن رویدن با آیدن, ایدن بود بنیاد تفکر ایران درست با این همانی پدیده رویدن با پدیده زایدن آغاز شده خدایان و جهان و اخلاق و هنر و شیوه زندگی همه از این همان باشی این همان باشی زایی زای با با رو شروع شده است همه چیزها پیدایش یادن همه از هم بود. این یک اندیشه فوقلاده مهمیست که ما هزارها بعد این را از دست دادیم. آنها به این رسیدند همه با این این همان باشی رویایی با زا، زا، زایایی همه از هم پیدایش شدند در تفکر ما در تفکر اینها جهان خلق نمی شده. برعکس در تفکر ما در تفکر مسلط بر جامعه ما که جهان خلق میشود. در تفکر آنها جهان خلق نمیشود است بلکه پیدایش میابد است این بنیاد فلسفه است خدا هم پیدایش میابد است رو ایدن و ایدن از هم دیگر بنیاد تفکر بوده است این اصل تفکر بوده است که کاملا سکولار بوده است ما میگویند می که سکولاریت در ایران نبوده است چون بی از فرهنگ ایران اطلاع ندارند خدایان هم از هم دیگر و از چیزها و از انسانها از انسان میرویدند و می زاییدند. این تخیر خدا نیست این ایده پیدایش و روگش از هم دیگر است از هم هر ایکست به رغم آن که دانش فیزیک و شیمی و بیولوژیکی و نجومی آنان ناچیز و غلط باشد بلی این اصل تفکر نیرومند و درست بوده است در همون آغاز شاه نامه میتوان در گفتار در پیدایش آلم آفرینش عالم این اصطلاحات رو در پس هم دیگر دید ما باید چشم باز کنیم آتش از جنبش می یعنی می روید از گرمین خشکی پیدایش می از آرامش سردی نمودار می شود از سردی تری می یکی از دیگری بر می شود هیچ کدام از الله خلق نمی شود گوهرها یک, ان یک ان در دگر ساخته گوهرها یک ان در دگر ساخته زهر گونه گردن براب همه به هم پیوسته و هم کوه از زمین میبالد به والید کوه آبها بردمید جنبنده یعنی جانپر پدید می آید. البته فردوسی در چارچوبه اسلامی نمیتوانست پراتر برود و بگوید که خدا هم از انسان بردمی دو بالید ولی در اصل در فرهنگ ایران چنین بوده است همه چیزها از جهان گرفته تا خدا همه پیدایشی هستند آیا چنین ایدهی بزرگ و متعالی و جرب نیست این همان باشی زایدن و زاییدن با روئیدن را در دیدهها در پدیدههایی که برای همه عادی و بسیار آشنا بوده است دریافته است. باید یک پدیدهای را پیدا کنند که این روییدن و ضاییدن را به هم بتوانند پیوند بدن این کجا بود این پدیده عادی و نزدید و بسیار آشنا همون نی بوده است که در زبانها با گوی شاعرانی صدها نام دارد که تحقیق در آن خودش بنیاد فرهنگ زن خدائی ایران رو خواهد گذاشت حالا من چندتا از این اینها را میشمورم از این چون که این ما با در بررسی هایمان با اون کار داریم و خیلی مهم من دانستن اینها از جمله واجه هایی که نا... معنای ندارن یکی گرو و قرو هست یکی کوپ کوپ کوف هست یکی زر هست در کردی زل یکی زریره هست البته زریره از همین زر است چون که ایره یعنی سه تا سه تا زر سه تا نه یک نه است یکی نام پنجمش شیت یا شیت هست چیتک یکی سوف است که این اسم صوفیه ما از آن میاد صوفی یعنی نائی چونکه اینا نیمی ناختن. البته از صوف جامعه هم درست میکردن ولی معنایی که به صوفی گفتن برای خاطر که اهل موسیقی و آواز بوده است نه برای خاطر که جامعه پشمینه میپوشیده است یکی از واجه های دیگر اینه هفت واجه هفتم پیت یا پیتک است. درست پنج روز آخر سال خمسه مسترقه که جهان از آن میروید جهان از آن پیدا میشد اسمش فیتک است یعنی از نه جهان از نه میروید یکی کانا و کان و کانیا هست یکی بوس هست کلمه بوس بوس و پوس آ آب پوستان آبستان پوست نی بوده از معنای نی یکی معنای کاز کازه یکی از با جاهای دیگر م... نی لوخ به ما میگفتند لوخان یعنی لوخ نای یعنی نای بزرگ لوخ و نای هر دوتا نای نای نای یعنی نای بزرگ یکی ند نای ند یا نرد چنانو که امروز هم در کرمان و اونجاها به عرق دم ند چون که از قرب و از اون تهش این قطره می ریزه دم یکی انگ انگ نی بوده است شیرابه نی را هم انگ میگفتن. از این رو شیرابه چون که شیرابه نه، گیاهان رو انگ میگفتن از این شیرابه ها رنگ درست میکردن چرا رنگ؟ چون که ار انگ یعنی شیرابه روان یکی باجه دیگر وین بوده است ویناو به حیز در کردی وینالود یعنی رودی که از قنات بیرون میاد پلان صورت من این واژه ها را شمردم تا اهمیت خیلی زیاد هستند اهمیت این واژه ها در فرهنگ ایران یکی از ک... کثیرترین واژه های ایران است نه حالا این نهی که دور چشمه های آب و رود ها و دریاها می میروید و از آن همه چیز می ساخته شد می میشد از سقف گرفته که با نمی ساختن تا نیزه تا سفره تا کلا تا کفش تا جامه تا پیراهن تا سپر و تیر تا خانه همه اینها خیلی بچ بسیار چیزهای دیگر را از نی میساختن این خیلی نزدیک بوده است و خیلی پیش پا افتاده از این روح هست که ما توجه نمیکنیم کل زندگی و جهان و خدایان و, و همون رویایی رو همون رویایی, رو رویایی و زایی را همان را, را, را همون روند زمان رو از همین نی و تفسیر و تعبیلی که از آن در درمیابدن این خیلی مهم است برای این خاطر است که این های نی منیاد شناخت این فرهنگ است نخسته این اندیشه ای را که از روابط زن و مرد و پیبند آنها به هم و هم گوهری و هم ارزشی آنها با هم در یافتند در همین پدیده نی بیان کرده نی دارای دو بخش است که در یک گره ده که کاب و کاف و قاف و قپ هم نامیده می شود و هم می پیبندن. کوه قاف از همین میاد چون که کوه هم معنای نهی دارد کوف در پهنبی به کوف کوف میگن این شده از کوف کوف قاب یعنی نه، گره نهیی که دو بخش نهی به هم پیبند میدن این یک چیز عبثانهی ای نیست این یک چیز خیلی پیش پا افتاده این گره اون دو اون دو بخش نهی را به هم میپیوندد و یکی میسازد و این گره نی بزرگترین نماد مهر بوده است خود واجه گره همون گروی هم یعنی نیست بنابراین زن و مرد و گره زن مرد و گره ستای یکتا بوده یعنی مهر بود نرینه و مادینه هم گوهر و هم ارزشان و در به هم پیبستگی آفریننده و زاینده و روینده میشه این یک مفهوم بسیار جرف بوده است از این واژه کانیا کانا گان مثلا مهرگان گان هم معنای نی و هم معنای دو چیزه و زن دارن مثلا مهرگان رو در سختی کنیزبق میگوین بقی مه، مهره اراکتومچو در اوستا مهر در میاد زن خدا بوده است در عباس. این مهری که در اوستا هست این مرد است نرینه است بعد از او در بر ضد او پیدایش یافته است و اساسا اگر دقیق خوانده بشود میبینید بیشتر در خشم است تا در مهر حالا اونها زمان و زمان را هم با همین پیوند نی درک میکردن. زمان زر ون زر چی گفتی؟ یکی از معنی ون یعنی درخت نی چرا گره هایش و برههای های نی رو با همی پیوند می, می از این روز زمان آفریننده می شد. گذشته و آینده شب و روز فصول در پیاپی پی هم آمدن در اثر این گره از نو آفریننده میشد این گره خیلی مهم است مثلا هفت این شش همبار ایران شش تا گره هست زمان رو به هم پیوند میکن از جمله وواژه هایی که امروز به کار میبریم یکی بیخ هست ولی درست بیخ در از پیخ بوده است که اصل آن به گره نی گفته می شود هر چیز بیخ دارد یعنی اصل آفریننده دارد مهر پیوندی هست که درخت را گیاه را می آفرینند. با آگاهی از این مقدمات که گفتیم آماده شناختن بیشتره گرودمان و یاغوت سرخ میشویم که در گفتار پیش آمد و این یاغوت سرخ آبادیان که در و یا گرودمان است که در میان جهان است و اصل دین است و به قول گرشاسنامه به گرودمان برده می شود و سپس هجرالعصبت در کعبه می, گردد در کعبة می این گرودمان که گرزمان شده است و معمولا به آسمان یا آسمان الیین یا عرش ترجمه می شود چیست و چه بوده است؟ می این واجه ها به نظر ما عجیب و غریب میاد و به خصوص که خیلی اینها را متعالی و متافیزیکی کردن اصلا ما به اصل معنی که مردم از آن می دور میشیم. گرودمان درست از واجه گرو یعنی نه و دمیدن ساخته شده است نای دامنده نایی که میدمد دامند که دمنده که دمان است در حوزوارش معنای گرودمان دمان شکم است که البته مقصود زهدان یا همان گرهبا یعنی درون اون آفریننده است نای یا گرو یا قره که در نای به وای به میتوانید این این نای به وای به. این همانی با هم بودند اینا نام خدایان ایران بودند چرا این نای به نای یا گرو که در نای به وای به میتوانید اصل پیدایش وای یا بادنی که بوده است یعنی نای اصل پیدایش وای یعنی باد از باد از نای بیرون میاد که این اصل همه چیزهاشا شمرده میشد البته این نای زهدان همه چیزها بوده است یک چیز مخصوصی به نانه نای نه این اصل همه چیزها را نای میگفتن گر میگفتن و اسمای دیگری که من شمردم چون باد هوای جنبنده آذر فروض شد باد که میوزد آذر را میفروضد و این همانی با آتش داده میشود این است که میبینیم نام آتش همیشه باد است پیوند نای با وای یا باد با این در گروه دمان دیده می شود چرا این نای از نای هم باد میاد که آتاشفروز است هم آهنگ و نوای موسیقی بیرون میاد و هم شیرابه و جد و مان یا خور خون و باده بیرون میاد این چون که این جد شیرابه آب به همه مایعات و روغنهایی در چیزها گفته میشد. بنابراین تمام این معانی در دم و در وای هست در همون گروه دمان همین گروه درست دم همه این معانی رو دارد در دمی که از گروه از نی بیرون میاد همه این معانی هست در بندهش دیده می شود در بوندهش میبینیم که کوه از زمین می روید و آسمان از کوه می روید گفتیم که آنها همه چیزها را در راستای زایش و روحش میفهمیدند و عبارت بندی میکردند کوه که برای ما بیشتر با سنگ کار دارد و شیوه درک ما از پیدایش گوها چیز دیگر است درست به معنای واژه نیست. در پهلوی به کوه یا گرم میگویند یا کف کف که همون کوپ کوب و کوب باشد قسمی از بوریا و حسیر گنده است کوپال یا کوپال که در شاهنامه آلات پیکار است در اصل چوب دست و اسای شبانان بوده است که در کوپ ال یعنی نای زن خدا زن خدای نی بوده هم این ما هم باجای کوفه هم معنایی ندارد در صورتی که در اینجا با کوه چرار کار نداشته است ولی در نیزار بوده است این مفاهیم میبینیم که در جاهای مختلف می شود. به کار برده میشود به سقف که اشکوب میگوین همین پسوند نی کوب هست چون در گذاشته سقف ها را از پوشیش نی میساختن با گل همیشه بهار هر کوپل کوپل میشه می که اینها به خیری زرد به بابونه به ارقوان به کهلا به اخوان کوپل گفتم شد کپ ال یعنی نه خدا این گل هم گل های ارتا و بهمن و خرم هست ببینید این همه باقی میماند. و نام دیگر کوه که در پهلوی گر است در اوستا گیریست و در پارسی قر یا قره شده است. شادقر به معنای نی خوب میبینیم که درست معنای نی دارد نام بهار ونقره بوده است وی هره یا ونقره هم هره هم قره معنای نی دارد با باد نیکوی که نای به به جهان میوزد بهار میشود یعنی نای به این باد دمی که از بیرون میاد این نسیم این همون بهار است درست میبینیم که نام آسمان هم گیری که تلپولیسی دیگر از گرو یا گیری هست یعنی از نی آسمان ها نی هست و خوزوارش این آسمان که گیری باشد خوزوارشش چی هست؟ گروتمان درست برمیگردیم من همه اینها رو گفتم برای خاطر که به واقعیت مسئله به پیدایش این گروتمان این آسمان این معنا و معنای دقیق درست همین گروتمان چیزی جز اون نی نیست که کوه آسمان در آسمان میروید حالا این در اوستا میبینیم یک جمله میاد که من اصل عوستایش را نمیخوانم ولی به معنای این هست که من روانم را به آسمان یعنی گیریم یعنی درست همین نی می یعنی روانم را به نی به بای می این همون پیوند زمیر انسان یا پروهر پروهر به ارتای پرورد است پروهر این خیلی مهم است چون که زردوشتی ها اینها را همه را میخوان به زور به چسبانن به شناسی خودشان این را نقش میکنن یک طرفش گفتار و نیک طرفش کردار نیک اون هم اندیشه نیک میگو دارن و این راه این ستایکت های پرهنگ قدیم ایران که معنای عشق را داشته است به کلی از میبرن و این معانی شناسی زردوش رو جانشین آن میکنن در صورتی که این فروهر اصل یابی مستقیم انسان با همین گرودمان نای دمنده یا وای به بوده است یعنی انسان این فروحت در هر انسان پر هر اصل پیوند انس مستقیم انسان با خدا بوده است دیگر انسان نیات به زردوشت محمد و فیموسا و عیسای نداشته است اینکه هخامنشیها یا اقوام دیگر مرده هایشان رو در پراز کوه به گور می درست برای همین نه دمنده نه دمان بودن کوه و رویش آن در آسمان و گرودمان بوده است خوب ببینید پیوند اینها را همه را ما تشخیص می دهیم این است که نای نه در همه نامهایش همنشین و انباز بای یا باد یا به نایبه بایبه نای دم و این نا، نای دمنده اصل آفریننده آتش اصل آفریننده وای یعنی پیوند و عشق و بافتن و اصل آفریننده آب یعنی رود و خون و باده با و اصل آفریننده آهنگ و نواب و موسیقی چنان که مردم باد را در را قاطع می شود دید. دوستبین می این دوستبین نه, نه که معنای بیننده دوست باشد این بین وین بوده است یعنی نای دمنده دوست خدا دوست بوده است خدا در پرهنگ ایران خدای عشق دوست بوده است حالا این است که میبینیم دوست آز... معنای دوستبین بعد معنای دوست آذرپروز است از این رو دم خوشه معانی مربوط به نیرو دارد که چی بود؟ افشوره و مان و آب نه؟ آهنگ و نوای نه؟ آذر نه؟ دمه آذرپروز خدای ایران بهمن و انقا یا سیمرق آذرپروز بودند نه روشنگر آتش اصل روشنی بود و آذرپروزی پرو... آذر از دیدگاه آنها معنای آفریدن داشت. همچنین ناییدن که نباختن باشد، معنای راهبری کردن و هدایت کردن با کشش رو داشت. موسیقی با کشش راهبری میکند. انسان موسیقی را دوست دارد. با نرمش و لطافت انسان را میکشد. دم هم بینی بود، هم دهان که با گفتار و آواز کار دارد. به ویژه که گلو همون گروس یعنی نه است و این همانی با رام دارد ببینید اینجا گ... خوب میبینید رام معنیش اساسا رم یعنی نی. گروه چون گلو گروه هم این همانی با رام دارد در این را در روایات و پارسی به خوبی میشود دید. و یکی از نام گلو در سقدی شاده است شاده نام این خود است. نام خدای رام است مثلا ما نبیه ها به نسیم یا اسیر فران کان بقی میگفتن و آن همون فرن است که به معنای دَم است و کان یا گانا نی و دوشیزه است بنابراین این فرن، کان بقی یعنی چی زن خدای دامند است ببینید این خیلی مهم است این دنیا از اسیر بود اسیر است معنای این رو داشت هست. این خیلی مفهوم را از از با, با تحریفات از ذهنها خارج کردند. فرنبق در ایران معنای همین خدای دمندرا داشت و از این باد و دم که اصل به هم بافتن بود وی که بیب واجه وی و بافتن از اون آمده است از همین واجه باد است وی وای. این همه هستی بافته هست اصلا کرمه هستی به معنای ب... از باد بافته هست به هم می بافت. از این رو در سقدی دامک به معنای موجود هستی و به مرکز جهان و هستی آفرینش دامدانه گفته میشد. البته در یزدانشناسی زردشتی چنان که گفتیم اولویت و اصالت آفریدن از بای و ارتا و آتش گرفته می شود و همه آفریگده اهورامز خواست اهورامزو می یا یا اهورامزه خواست اهورامزو احورا می ولی در اصل این نای و با بای نایی که میدمد و آزر می فروزد این گرودمان یعنی نای دامنده که می رویاند و آزر می در هر چیزی بوده است اصل آفریننده در هر جان هر چیزی بوده است. در گذیده های زادست پرم می آید که اهورا آتش ابزونی را خود در گرودمان بیافرید و تجلی مادی آن آتش سودان زمینی و فضایندگی آن این است که هر گونه ای را در سرشت خیش بیافزاید اهورا مزده که جایگاهش روشنی بیکران است اولویت را از آتش و آزرپروزنده آزر آزر یعنی بهمن آزرپروز انقا یا سیمرق آزرپروز میگیره نام این آتش عبزونی نام این آتش عبزونی گرودمان که دیده شد همان آسمانیست که از کوه، یعنی از نه میروید در واقع همون دم کوه دم نای است بعدش خواهیم دی... دید که واژه دمآوند و نهاوند درست از همین تصویر برآمده است و این معنایی که میگویند پیش کوه و پس کوه ندارد این سعی کردن از واجه ها تبار بسازند و هیچ رابطه با اساتیر و هرز تفکر مردم در ایران نداشته است بلکه این ساخته ذهنی امروزه ماست این در واقع این دیده می شود که این دم کوه دم نای است کوه باد بادخیز است می بینیم با هایی که یا نمخیز است نهاوند نمخیز دمهاوند بادخیز اینکه که بعدش خواهیم دید که معنای عمیقتر این را در رابطه با زخاق حالا این آتش ابزونی که در گرودمان هست یک اصطلاح اوستایی دارد که برزه برز, برز سوانگه یک خورده تشریه این همه نکات را برای ما روشن می کند معانی خیلی ساده دارد ولی چون بس که این را چرخاندن، و پیچادند کسی و شناسی زردوشی نمیخواد اصل مطرب رو بگوید برای ما گنگ است ولی در اصل چون که اصل مفهوم عالی رو که در آن نهان است برای ما پوشندن برای از که همون مانند البرز البرزه خوب از می البرزه زن خدای متعالی اولند یعنی خود رو میفروز می می اپروزت این واژه را یزدان شناسی زردشتین واژه بر از را به بلندسود یا آتش ابسونی ترجمه کرده این سرچشمه این بر از سوانگا سرچشمه همه آتش ها در همه چیز است که اصل ابزاینده و اصل عبزوده. نه هر چیزی است درست این اصالت در جهان را نشان میدهد این است که امروزه هر متفکری به آن رسیده است معنای امروزه سود که فایده و منفعت باشد ما را از اصل منحرف میسازد این بلند سود پسوند افزودن افزوتن این افزوتن این زوتن از کجا میاد از ریشه سوچ میاد سوچ که به معنای سوچ به معنای آتش زدن افروختن و شعلور ساختن است امروزه این, این واجر شده از سوختن که از معنای اصلیش در ادبیات ما بسیار دور شده است چون که وقتی ما آثار اورپا را میخونیم و دم از سختن میزنن سخت شدن بیشتر معنای درد و آزار شدن و خاکستر شدن دارد در حالی که معنای اصلیش بسیار مثبت است و همون افروختن آذر افروختن شعلور ساختن جان افسودن، به هیجان و جنبش و جوش آوردن است از این رو موعود ایرانیان سوشیانت بوده است که زردوشتی ها آن را به سودآور ترجمه می و و شناسان و ایرانیستا همه همین معنای زردوشتی ها رو دنبال می و می که چه معانی عقب افتادی که هیچ موری را هم جا جنبش نمی دهد از اینها بیرون آده می شود و اینها همه می شود معانی علمی بررسی های علمی در صورتی که این سوشیانز به معنای چی هست به معنای آتش افروض هست کسی است که جانها را جانهای خفته را از نو می افروض به جنبش و جوش می آورد زنده و فعال و بیدار می کند. به اصل همه چیز در همه تلنگر رو تا همه از خود سر بر اپرازد. به عبارت دیگر یعنی سیمو را از خاک سرش بر می خویزد و این درست وارونه آن چیزیست که زردشتیان می خواهن. اونها از سر رواج معجدد آموزه زردوشت رو میخواهند نه افروخته شدن انسان ها در اصالتشان اونها در رستداخیز این چیز را میفهمند این پیشوند سبه سونگه در آتش آتش سونگه درست همین افروخته شدن و به جنبش تازه انگیخته شدن از خودست از این رو در سانسکریت معنای سبه به معنای کسی است که به حرکت میانگیزد به زندگی میانگیزد با این آغازگری و تأسیز سوه گفته می شود و پس بند آتش سبنگه بنگه است. حالا بنگه همون باژه بانگ گانگ امروزی ماست که به معنای فریاد و آواز بلند است کورت البته به از آن بانگ می گویند. ولی در بندهش با معنای بسیار جرف بانگ روبرو می شویم. بانگ یک دردمند همه جانها را فرا خواند تا به پشتیبانی و یاری او برخی زند بشه شتابان ببینید اینجا بانک یک لپه معنای خیلی ژرفی پیدا کرد این معنا در همون واژه بانک هست چون بانک مرکب از واژه و انقه است انق که در پیش گفتیم نای است و شیرابه درون نای است و بای وا در پیشوند همون وای است که خدای پیوند و مه و خدای جان که همه چیز را در بهم هست میکند کند بنابراین آتش آتش بر از که در گرو گرودمان یا نی یا اصل زاینده هر چیزی یعنی در گرودمان هر چیزی هست اصل به حرکت انگیزنده و مبتکر و مؤسس و زندگی انگیزنده در هر چیزی است این اندیشه به کلی بر ضد آفرینندگی اهورامزدا زردشت و به کلی بر ضد مفهوم خالق بودن الله و دیگران است که اینها با خواستشان با روشنی بیکرانشان با امرشان همه چیز را می آفرینند این است که در حجوارش درست معنای گرودمان باقی مونده است گرودمان به معنای شکم یعنی زهدان یا میان هر چیزی است جگر هر چیزی است این آتش افروزنده و سرکش ساونگه است که در میان همه چیزها در جهان شعله میکشد و از آن همه چیزها خود را میگسترند و می رویند و می میشوند و خود را میزایند و روشن میشوند به خوبی دیده میشود که ایرانیان هزارها پیش اندیشه را آفریدن که سپس ادیان نوری و ابراهیمی همه را از بین بردن و همین ایده است که خیلی مختصر آن به هراکلیت رسیده است که ده همه دنیا را از آتش شعله برمی ولی با درک فرهنگ ایران است که می شود فهمید این اندیشه از کجا آمده است؟